گروه جوان و فرهنگ به نام خدای مهرافرین سلام شب شما به خیر و شادکامی افسانه خوندن و افسانه شنیدن از نیازهای روح آدمیه نیروی تخیل و تصور مردم و باورهای آمیانه افسانههایی رو میسازه و گویندگان و نویسندگان اونها رو در قالبی شیرین ساده و روان و پندامیز ارائه میدند افسانه ای ازری پادشاه و پسرش رو از گنجینه ارزشمند ادبیات شفاهی مردمان سرزمین آذربایجان امشب براتون نقل میکنم برگرفته از کتاب افسانه های آذربایجان ترجمه حمید بخشمند قدیم پادشاه ظالم و ستمکاری بود که هیچ فرزندی نداشت و از این بابت خیلی ناراحت و افسرده بود یه شب پادشاه تو خواب دید که درویشی به سراغ اون اومد و گفت ای پادشاه ای پادشاه میبینم که به خاطر نداشتن اولاد خیلی ناراحت و افسرده ای اما بدون آگاه باش که اگه صاحب فرزند بشی خیلی پشیمون و ناراحت میشی پادشاه از درویش پرسید بابا درویش چرا پشیمون میشم با وجود اینکه یه عمر حسرت داشتن فرزند رو دارم درویش به پادشاه خیره و گفت او برای اینکه بعد از تولد فرزندت نتیجه با حاصل تمام اعمال و کردارت رو میبینی از اون جایی که تو در حق مردم ظلم کردی فرزندت هم به تو ظلم میکنه خلاصه بدون کرچ کاشتی همون رو هم درو میکنی پادشا وقتی از خواب بیدار شد از خوابی که دید سخت نگران شد و به فکر فرو رفت بعد از گذشت نه ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه و نه ثانیه زن پادشاه پسری به دنیا آورد که نصف بدنش یعنی از کمر به پایین به شکل مار و نصف دیگه بدنش یعنی از کمر به بالا به شکل انسان بود پسر نیمه مار و نیمه انسان پادشاه در مدت یکی دو سال به اندازه پسری هجده ساله بزرگ شد و روزی سراغ پدرش رفت و با جدیت گفت پدر من تصمیم گرفتم ازدواج کنم تو باید دختر پادشاه رون رو خواستگاری کنی پادشاه با شنیدن این حرف پوزخندی زده گفت پسره بدبخت من کی حاضر میشه دخترش رو به تو بده مار انسان گفت من این حرفو سرم نمیشه من دختر پادشاه روم رو میخوام پادشاه گفت آخه پادشاه روم چجوری راضی میشه دخترش رو به تو بده مار انسان گفت همون که گفتم اگه این کار رو نکنی چنان میشد میزنم که هیچ وقت خوب نشی پادشاه هرچه گفت و گفت مار انسان رازی نشد که نشد و دست آخر هم به پدرش سه روز مهلت داد که دختر پادشاه روم رو براش خواسته بری پادشاه از پسر عجیب الخلقت چنان حراسان شد که وزیر و وکیل خودش رو فراخوند و با آنها به چار اندیشی پرداخت بعد از کلی بحث و گفتگو و مشورت قرار برای این شد که یه دختر معمولی رو پیدا کنن و اونو به جایی دختر پادشاه روم به مار انسان معرفی کنن پادشاه همون روز مار انسان یا همون پسرش رو نزد خودش فراخوند و گفت پسرم پسرم به به آرزوت رسیدی من دختر پادشاه روم رو برات خواستگاری کردم فردا روز عروسی توه خودت رو برای فردا آماده کن و اگه حرف و مطلبی داری بگو مار انسان گفت پدر باید برای من چنان جشن عروسی برپا کنی که هرچه آدم فقیر و نیازمند و در درمونده توی این سرزمینه اونجا بیان بخورن و دری از آزاد در بیارن تازه موقع رفتن هم به هر کدومشون باید هدیهی مناسب بدی پادشا کمی عصبانی شده گفت این دیگه چجور خواسته یه اصلا تو به آدم بدبخت و درمونده چه کار داری؟ آخه درست نیست اونا با اون سروز نامناسبشون به جشن عروسی تو مارنسان با جدیت گفت: همین که گفتم، اگه به حرفا ممن نکنی بدون شک زنده نمیمونی حالا خودت میدونی پادشا این بار هم از ترس جونش نصف خزونه خودش رو صرف مخارج راهندازی عروسی پسرش یا همون مارنسان انسان کرد Oh. Uh -huh. عروسی پادشاه به دختر یا همون عروسش گفت دخترم تو باید نقش دختر پادشاه روم رو برای پسرم بازی کنی بعد از اینکه پسرم به خواب رفت سنگ بزرگی رو که گوشه اتاق گذاشتیم برداری و محکم به سرش بکوبی اونقدر محکم بکوب که دیگه نتونه از جاش بلند خلاصه. اون شب تمام مردم فقیر و ندار شهر اومدن و خوردن و نوشیدن و موقع رفتن هدیه مناسب از طرف پادشاه دریافت کردن و رفتن و وقتی همه رفتن و دختر و مار انسان تنها شدند مار انسان یا همون پسر پادشاه احساس کرد که دختر قصد کشتنشو داره این بود که چون نیشی به اون زد که عروس بلا فاصله کشته شد صبح فردا وقتی پادشاه از ماجره باخبر شد از ترس عرق سردی بر تنش نشست بعد مار انسان به سراغش اومده گفت پدر این دفعه ازت میخوام دختر پادشاه چین رو برام خواستگاری کنی فقط اینو بدون که اگه این کار رو نکنی چونان نیشت میزنم که مثل زغال سیاه بشی و فوراً بمیری حالا خود دانی. پادشاه هرچه اصرار کرد که پسرش دست از این صدای ناممکن برداره فایدهی نداشت که نداشت. و بالاخره مجبور شد این بار هم دختری معمولی پیدا کنه و اونو به عنوان دختر پادشاه چین به پسرش عرضه کنه و به دختر هم سفارش کرد که اون هم مارنسان رو به نحوی از بین ببره. وقتی کارها رو برا شد پادشاه برای پسرش پیغام فرستاد که فردا روز عروسی اونه و پسرش یا همون مار انسان به پادشاه گفت پدر این بار میخوام که هفت شب و هفت روز جشن عروسی بپا کنی و تمام فقیرها و نیازمندان شهر رو به عروسی دعوت کنی و موقع رفتن هم به تک تک اونها هدیهای مناسب بدی پادشاه این بار هم از ترس نصف دیگه خزونشو خالی کرد و هفت شب و هفت روز جشن و پایکوبی برپا کرد و آخرین شب عروسی وقتی که عروس وارد اتاق مار انسان شد اون فورا متوجه نقشه دختر برای کشتنش شد و در یه چشم هم زدن چون نیشی به دختر بیچاره زد که دختر فورا نه. روز بعد از این ماجرا روزی ای مار انسان به سراغ پدرش رفت و گفت من تموم دوز و کلک های تو رو میدونم. دو دوتا دختری که برام گرفته بودی هیچ کدوم دختر پادشاه روم و چین نبودن برای همینم من اونا رو نیش زدم و کشتم این بار اگر دختر پادشاه هند رو واقعا برام سیگاری نکنی در عرض یه دقیقه تورم نیش میزنم و از بین میبرم این بار باید جشن عروسی من مدت چهل شب و چهل روز ادامه پیدا کنه پادشاه که دید خیر قضیه خیلی جدیه و اگه این دفعه به حرف پسرش عمل نکنه به دست اون کشته میشه فورا تمام دار و ندارش رو فروخت و با پول اون دختر پادشاه هند رو برای پسرش گرفت بعد هرچی تلاو و نغره توی خزون مونده بود بین فقیرها و آدمهای ندار تقسیم کرد تا خزانه به کل خالی خالی شد شب عروسی رسید پادشاه تو این فکر بود که اگه این بار هم مثل دو مورد قبل مارنسان دختر پادشاه هند رو بکشه اون وقت جواب پادشاه هند رو چی بده؟ نگرانی تمام وجود پادشاه رو پر کرد یاد حرف درویش افتاد که گفته بود آه دست از تولد فرزندت نتیجه و حاصل تمام اعمال و کردارت رو میبینی از اونجا که تو در حق مردم ظلم کردی فرزندت هم به تو ظلم میکنه خلاصه بدون که هرچه کاشتی همون رو درو میکنی پادشا چاره اندیشید و عده ای رو معمور کرد که به طور مخفیانه دور از چشم پسر و عروسش اونها رو زیر نظر بگیرن تا اگه مارنسان قصد کشتن دختر پادشاه هند رو داشته باشه فوراً به اون حمله کنن و مارنسان رو از پا در بیارن بعد از پایان مراسم عروسی وقتی که عروس و پسر پادشاه توی اتاق تنها موندن یهو مارنسان یا همون پسر پادشاه در برابر چشمهای مأموران پادشاه به یه پسر جوون زیبا تبدیل شد مأموران با دیدن این صحنه از تعجب پا به فرار گذاشتن و به سرعت خودشون رو به پادشاه رسوندند و گفتن قبله یادم قبله یادم پسرتون پسرتون پادشاه هراسان پرسید پسرم چی چی شده مامورین گفتن قربان پسرتون دیگه دیگه مار نیست اون اون به یه پسر جوون و زیبا تبدیل شده بعد اون چرا که دیده بودن برای پادشاه بازگو کردند پادشاه از شنیدن این خبر خوشحال شد و فردای اون شب پسرش رو به نزد خودش فراخوند و گفت پسرم این چه سری بود آخه به من بگو که چرا این ظلم ها رو در حق پدرت روا داشتی و خزونه منو خالی کردی ها؟ پسر پادشاه لبخندی زد و گفت پدر پدر اون که بر سرت اومد نتیجه مال و رفتار خودت بود. هرچه کاشته بودی همون رو هم درو کردی. مال و ثروتی که تو با ظلم و ستم از مردم قصد کرده بودی به خودشون برگردنده شد. اون وقت از دعای خیر مردم بود که تبدیل به پسری زیبا شدم. پادشا سخت به فکر فرو رفت و تصمیم گرفت پسرش رو به جای خودش به تخت پادشاهی بنشونه و خودش زندگی آروم و بیدغدغی رو شروع کنه و مردم سرزمینش رو دوست داشته باشه و حامی اونها. افسانه زیبای پادشاه و پسرش را از مردمان سرزمین آزربایجان برای شما نقل کردم بر دس کتاب های آزربایجان جلد دو و سه برگردان حمید بخشمند که امیدوارم از شنیدن اآن لذت برده باشید ها در ادبیات شفاهی مردمان هر منطقه جایگاه مهمی رو به خود اختصاص دادن این های شیرین و شنیدنی مثل گنجینه ارزشمند در سینه مردمان هر منطقه جا دارند مردم ایران عزیز از روزگاران بسیار دور اندیشه باور و آرزوها و تجربه های خودشون رو در غالب قصه، افسانه و مثل ریخته و اونها رو مثل گوهری گرانبها ها حفظ کردند افثانه ها بهانه شیرین برای پند گفتن و حکمت ها زبان افسانهها ها و قصه های آمیانه زبان مردم و کوچه و بازاره زبانی ساده و روایتی این افسانهها ها به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگه منتقل شدن و باورها سنتها برداشتها و شعایر انسانی رو در خود باستاب میدن توجه به گنجینه ادبیات آمیانه به خصوص افسانه ها امری لازم و ضروریه پاسدار و حافظ این گنجینه های معنوی مردمان این سرزمین باشیم و در حفظ و ثبت اونها تلاش کنیم هزار افسان کار مشترکی بوده از نویسنده و سردبیر زینت سال پور ویراستار سویلا کریمی اجرا مهران دوستی صداوردار اکبر نیکاین تای کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه‌ی دیگر بدرود